به نام خدای یگانی مهربان سلام افسانه ها بخش مهمی از میراث فرهنگی هر قوم به شما رویدند در افسانهها ها ارزش های سنتی و پسزمینه های فرهنگی و روانشناختی هر قوم و حوادث اجتماعی جاری انعکاس پیدا میکنه و شواهدی قاطع و بنیادی رو به صورت روایت درباره مشخصات و ویژگی سنتی فرهنگی که از اون برخواسته به خواننده یا شنونده میده هفته در سیر و سفر به دنیای پر رمز و راز های ملل به سرزمین ترکیه سفر میکنیم ترک در قرن دهم قبل از میلاد از آسیای مرکزی به ترکیه اومدن و مجموعه قصه ها و افثانه های زیبا و ارزشمندی رو با خودشون آوردند. این افسانهها ها و قصه ها بعدها جزی از زندگی و فرهنگ مردمان ترکیه شد و جایگاه مهمی رو در ادبیات شفاهی مردمان این سرزمین یعنی ترکیه به خودش اختصاص داد. افسانه های مردمی ترکیه در خونه ها و قهوه خونه ها روایت شده و از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کرده. افسانه های مردمان ترکیه بسیار شنیدنی و حکمت میزن. اما افسانه‌ای رو که از سرزمین ترکیه براتون نقل میکنم، نامش افسانه شاهزاده جوان یا جوانترین شاهزاده برگرفت از کتاب داستانها و افسانههای های مردم ترکیه نوشته سم با ترجمه از محمد رضا شمسه در روزگاران گذشته در سرزمین ترکیه پادشاهی بود که سه پسر داشت. روزی پادشاه احساس کرد که دیگه به پایان عمرش چندی باقی نمونده. بنابراین تصمیم گرفت سرزمین پادشاهی خودش رو به طور مساوی بین سه فرزندش تقسیم کنه. البته مقام سلطنت باید به اولین فرزند پادشاه میرسید. شاه بسیار کنجکاو بود. که میخواست بدونه کدوم یک از سه پسرش اون رو بیشتر دوست داره بنابراین سه پسرش رو نزد خودش فرا خوند و از اونو پرسید فرزندان دلبندم. دلم میخواد بدونم که هر کدوم از شما چقدر منو دوست دارین پسر اول پادشاه با خوشحالی جلو اومد و بر دست پدر بوسه ای زد و گفت پدر عزیزم من تو را از تمام گنج های روی زمین بیشتر دوست دارم. پادشاه از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد. وزیر لب گفت آفرین آفرین. واقعا که تو لایق جانشینی منی. نوبت به پسر دوم پادشاه رسید. پسر آروم و با فروتنی بر دستان پدرش بوسه زد و گفت. پدرجان. تو در نزد من از هر کس و هر چیز گرانبهاتری تو عزیزی و گرامی هستی برای من. و بعد اضافه کرد پدر باور کن این حرف را از سمیم قلب میگم. پادشا از این جواب هم خیلی خوشحال شد و شونه هاشو بالا انداخت و گفت اینم از میزان علاقه تو بعد رو کرد به کوچکترین فرزند خودش و گفت خب بگو ببینم شاهزاده ی جوان تو چندازه پدرت رو دوست داری ها؟ جوانترین شاهزاده پدرش رو در آغوش کشید و با لحن آروم گفت پدر عزیزم و اندازه نمکی که تو قضا میریزن برای من عزیزی پادشاه از سر تعجب نگاهی به کوچکترین فرسند خودش انداخت و کمی بعد آنچنان عصبانی شد که فریادش تمام قصر رو لرزوند پسر کوچیک پادشا که پادشاه که انتظار چنین رفتاری رو از پدرش نداشت با دست گفت پدر پدر چی شده من من حرف بدی زدم پادشاه بر سرش فریاد زد و گفت پسر نمک نشناس و بعد پادشاه زیر لب گفت تدر عزیزم رو اندازی نمکی که در قضا میریزن دوست دارم و صداشو بعد پادشاه بلند کرد و گفت جلاد آی جلاد جلاد سراسیمه به نزد پادشاه آمد و گفت در خدمتم قربان امر بفرمایید پادشاه که از عصبانیت تمام بدنش میلرزید رو کرد به جلاد و گفت فوران، فوران این پسره نمت نشناس رو به جنگل ببر و سرستنش جدا کن جلاد جلاد که از این دستور پادشاه به شگفتی افتاده بود با لگنت زبون گفت غربان من منظورتون پسرتونه؟ پادشاه با عصبانیت جواب داد احمد پس منظور خودمم؟ جلاد با ناباوری و دست پاچکی تعظیم می کرد و گفت چشم قربان چشم از شاهزاده رو به جنگل می برم و سرست و نگاهی از سر دلسوزی به شاهزاده کوچیک انداخت و ادامه داد بله سرستنش جدا می کنم گربان به بعد به شاهزاده کوچیک اشاره کرد که به دنبالش رمونه بشه دو پسر دیگه پادشاه با لبخن به همدیگه نگاه کردن و پادشاه رو دلداری داد. جلاد به همراه شاهزاده جوان به جنگل رسیدند. جلاد که دلش برای شاهزاده کوچیک سوخته بود، رو کرد به شاهزاده و گفت: شاهزاده جوان من نمیتونم سرستن از جدا کنم. تو مثل پسر منی. آه تو این مدت که در قصر پدرتون بودم، رفتار تو با همه مهربان و فروتنانه بود. حالا من چگونه میتونم سر تو جدا کنم ها؟ بعد دستی بر شانه شاهزادی جوان زده گفت تو باید زودتر از اینجا بری جوان و هیچ وقت به زادگاهت برنگردی شاهزاده با نگرانی گفت اما اگه پدرم بفهمه که تو از دستور اون سرپیچی کردی حتما تو رو میکشه جلاد گفت اگه تو هیچ وقت به زادگاهت برنگردی اون متوجه این قضیه نمیشه و خطری هم منو تهدید نمیکنه. حالا قول بده که هیچ وقت به زادگاهت بر نگردی قول میدی؟ شاهزاده مکسی کرد و بعد آروم دستش رو به طرف جلاد دراز کرد و گفت باشه قول میدم. مطمئن باش هیچ وقت به زادگاه هم بر نمی گردم. جلاد که آثار اعتماد و امنیت توی صورتش موج میزد به شاهزاده گفت بهتره زودتر پیرهنت رو به من بدی که اونو به خون آغشته کنم و برای پادشاه ببرم اینجوری پدرت مطمئن میشه که من سرستن تو جدا کردم شاهزاده پیرهنش رو درآورد و به جلاد داد جلاد هم ازش خداحافظی کرد و به سرعت از جنگل بیرون رفت و ساعتی بعد خرگوشی رو شکار کرد و پیرهن شاهزاده جوان رو به خون اون آغشته کرد و بن از شاهزاده جوان روزهای بسیاری رو به سرگرد گذراند تا بالاخره به شهر کوچکی رسید از اونجایی که خیلی خسته و گرسنه بود در خونه ای رو کوبید صدای ضعیف پیرزنی از پشت در به گوش رسید کیه اومدم و در رو به روی شاهزاده جوان باز کرد شاهزاده معدبانه گفت مادرشان من راه درازی اومدم خیلی خسته و گرسنم ممکنه امشب رو به من پناه بدید قول میدم صبح زود از اینجا برم پیرزن که زنی نیکوکار و مهربون بود و رفتار معدبانهٔ شاهزاده به دلش نشسته بود شاهزاده رو به خونش دعوت کرد و مقداری غذا شاهزاده شاهزادهم که چند روزی میشد غذایی نخورده بود با حرص و ولع غذا رو خورد و از پیرزن مهربون تشکر کرد پیرزن از شاهزاده پرسید پسرجان تو چیستی از کجا میای؟ خونوات داری؟ شاهزاده جواب داد: آه من از سرزمین دوری اومدم و پدر و مادرم رو از دست دادم و حالا در پی سرنوشت خودم میگردم. پیرزن که تنها زندگی می کرد به تندی پرسید: پسرم، آیا حاضر پیش من بمونی؟ شاهزاده جوان با تعجب نگاهی به پیرزن کرد و پرسید: اینجا بمونم من؟ من اینجا بمونم پیش شما؟ پیرزن با خوشحالی گفت آره پسرم تو میتونی اینجا پیش من بمونی میبینی که من تنهام من همیشه از خدا میخواستم به من پسری ادیه کنه یه پسر خوب و معدب مثل تو حالا بگو ببینم تو پیش من میمونی؟ به بعد منتظر جواب شاهزاده جوانمون شاهزادهام با خوشحالی قبول کرد و لبخند بر لبهای پیر زن و شاهزاده نخشم از فردای اون رو شاهزاده جوون جوان به کار نجاری مشغول شد از غذا پادشاه اون سرزمین فرزندی نداشت تا جانشین اون بشه پادشاه که پیش شده بود آرزو میکرد سرزمینش رو به دست مردی جوان توانا و خردمند بسپره و اون جوان رو به فرزندی بپذیره. توی این سرزمین رسمی بود که اگه پادشاه جانشینی نداشت تمام مردان جوان در میدون شر جمع شدن و بعد پرنده ای رو توی آسمون رها میکردن. اون پرنده بر سر هر کسی مینشست اون فرد پادشاه میشد بر طبق این رسم جارچیا توی شهر جار زدند که آهای مردم شهر به هوش باشید که پادشاه فرمان داده تمام جوانهای شهر در میدان جمع شوند آهای مردم به هوش باشید و بر تبلهای خودشون کوبیدن، در عرض یک ساعت تمام مردم شهر از پیر و جوان توی میدون شهر جمع شدن، شازاده جوان و پیر زن هم میون جمعیت بودن، در این لحظه پادشاه پرنده رو توی آسمون رها کرد، همه یه نگاه ها به یک باره به طرف آسمون کشیده شد، دل توی دل جوان شهر نبود پرنده توی آسمون چرخید و چرخید و در نهایت روی سر شاهزادهی جوان نشست صدا و یه هم همه مردم بالا گرفت پیرزن با خوشحالی فریاد زد پسرم پسرم بزر پادشاه شده پسرم و بعد رو کرد به اطرافیانش و گفت این ای ای ای پسر خونده ای من آینده این شهر ول توی میدون شهر برپا شد مردم شهر از اینکه که ای پادشاه شهرشون شده به شدت ناراحت بودن و گرولند های زیادی از گوش و کنار به گوش پادشاه رسید یکی میگفت ما نمیخوایم قریبهی پادشاه شهرمون بشه یکی دیگه میگفت پادشاه نباید حکومت رو به دسته یه جوون ناشناس بده و خلاصه هر کسی اعتراضی میکرد در پادشاه دستور داد فردا این مراسم دوباره اجرا بشه و جارچیا ها اعلان کردند مردم شهر به هوش باشید به دستور پادشاه مراسم انتخاب پادشاه آینده فردا دوباره در همین جا اجرا می شود و مردم با خوشحالی میدون شهر رو تر کردن و امیدوار بودن که فردا پرنده روی سر یکی از مردم شهر خودشون بشینه بردهای اون روز باز هم مردم شهر توی میدون بزرگ شهرشون جمع شدن و این بار پادشاه به وزیرش دستور داد که اون پرنده رو توی آسمون رها کنه این بار هم پرنده چرخید و چرخید و روی سر شاهزاده جوون که امراه پیرزن در فاصله دور از جمعیت نشسته بود به آرومی فرود اومد باز هم صدای اعتراض مردم بلند شد که آخه ما چجوری میتونیم جوونی رو که نمیشناسیم پادشاه خودمون کنیم، ها؟ اصلا این جوون غریبه کیه از کجا اومده چرا به سرزمین خودش برنمیگرده خلاصه باز هم پادشاه به خاطر اعتراض مردم شهر مراسم انتخاب پادشاه آینده رو به فردا مکول کرد و جارچی ها اعلام کردن به فرمان پادشاه فردا برای آخرین بار مراسم انتخاب جانشین پادشاه برگزار خواهد شد مردم روز بعد جمعیت زیادی توی میدون شهر جمع شده همه با کنجکاوی منتظر بودند تا ببینن که بالاخره چه کسی جانشین پادشاه میشه ولی این بار هم پرنده روی سر شاهزاده جوان فرود اومد و مردم به ناچار اونو عنوان پادشاه آینده خودشون پذیرفتن چهره زیبا و رفتار و حالت شاهانه شاهزاده جوان باعث شد که شاه پیر هم از این انتخاب راضی باشه و تحت تاثیر رفتار جوون قرار بگیره البته اون که این جوون یه شاهزاده واقعی چندی بعد شاه پیر از دنیا رفت و شاهزاده جوون پادشاه اون سرزمی شد این شاهزاده جوون اولین کاری که کرد دستور داد که پیرزن مهربون رو به قصب بیارن تا مثل مادر پادشاه زندگی کنه بعد هم دختری رو به همسری انتخاب کرد و جشن عروسی باشکوهی برپا کرد همه مردم از پادشاه جوون خیلی خیلی رازنده دقیقاً گذشت روزی شاهزاده تصمیم گرفت پدرش رو به کشورش دعوت کنه. بنابراین بروان کشور همسایه پیکی رو برای پدرش رساد و از اون رسما دعوت کرد. پادشاه پیر هم پذیرفت و با چند تن از وزیرانش وارد سرزمین شاهزاده جمون شد. شاهزاده سراشپز قصر رو به حضور فراخوند گفت: بهترین غذاها رو تهیه کن. انواع مختلف غذاها و نوشیدنی ها سراشپس تعظیم میکرد و گفت کشم باربن خیالتون تخت تخت باشه شاهزاده یه جوان ادامه داد فقط یادت باشه در هیچ کدوم از غذاها نمک نریزی باشه سراشپس با تعجب گفت قاربن جسارتن عرض میکنم اصلا نریزم؟ شاهزاده تأکید کنن گفت اصلا اصلا حتی به اندازه یه سر سوزن سراشپس با تردید پرسید قربان شما مطمئنید که نباید توی غذاها نمک بریزم آخه غذای بدون نمک پادشاه جوان کلام سراشپز رو قطع کرد و گفت بله مطمئنم تمام غذاها باید بدون نمک باشه متوجه شدی سراشپز بتوندی گفت بله بله بله بله قربان بله، هرچه شما بفرمایید و به سرعت در حالی که هنوز آثار تجب توی صورت سراشپز موج میزد، از اتاق پادشاه خارج آخر روز مهمانی فرارسید پادشاه جوان که همون شاهزاده باشه برای دیدن پدرش لحظه شماری میکرد اون دستور داد تا تمام غذاها رو روی میز بچینن و خودش منتظر منتظرمون تا پدرش از راه برسه لحظه بعد پادشاه پیر وارد قصر شاهزاده جوان شد اما نتونست پسرش رو بشناسه و پسر هرچند از دیدن پدرش خوشحال و کمی دست با چه شده بود اما سعیت هیچ کنه عکس عملی از خودش نشون نده بنابراین با آرامش جلو رفت و بعد از خوشامدگویی به پادشاه پیر که در واقع پدرش بود اونو به تالار پذیرایی دعوت کرد هنگام شام شد پیش خدمت ها غذاهای مختلفی رو که تدارک دیده شده بود روی میز چیدن اما غذاها اصلا مزهی نداشت چون پادشاه پیر به اصرار شاهزاده چند روزی در اونجا موند. در تمام این مدت به او و همراهانش غذای بی‌نمک میدادن سرانجام پادشاه پیر طاقت نیاورد و از شاهزاده که همون پسرش بود پرسید سؤالی داشتم پادشاه جامون. شاهزاده گفت در خدمت شما هستم هر سؤالی دارید بپرسید پادشاه پیر گفت مگه در این سرزمین نمک یافت نمیشه که غذاهای شما بدون نمکه ها پسر خنده ای کوتاه کرد و گفت مهمان الیقدر در سرزمین ما نمک کمیاب و کیمیا نیست اما من دستور دادم در غذای شما نمک نریزن پادشاه پیر با تعجب پرسید شما دستور دادید چرا و به چه دلیل شاهزاده گفت چون شما به نمک هیچ علاقی ندارید و فکر میکنید که نمک اهمیتی نداره. پادشاه با تعجب جواب داد: نه نه نه نه نه این درست نیست. من هم به نمک علاقه دارم و هم به اون اهمیت میدم. شاهزاده پوسخندی زد و پرسید: واقعا؟ <تصفح> پادشاه پیر گفت: البته. آخه مگه میشه بدون نمک زندگی کرد؟ شاهزاده جوان تأکید کنن پرسید: پادشاه بزرگ، پس شما این گونه فکر می کنید، ها؟ پادشاه پیر به تندی جواب داد، بله، بله، بله، شاه جوان به سراحت گفت، پس چرا؟ چرا وقتی کوچکترین فرزندتون گفت که شما رو بندازین نمکی که در غذا می ریزن دوست داره، شما، شما اونو به جلاد سپردید، ها؟ پادشاه پیر از شنیدن این حرف سخت به فکر فرو رفت و در حالی که عشق از چشاش سرازی شده بود با باز گفت بله من حالا میفهمم که چشت بزرگی مرتکب شد شاهزادی جوان که فرصت رو مناسب دید به پادشاه پیر شد و گفت پدر جان خوب نگاه کن من همون کوچکترین فرزند شما هستم جلاد شما دلش با حال من سوخت و منو نکشت پادشاه از خوشحالی اشک ریخت و در هق هق گریه از فرزندش خواست که گناه اونو ببخشه پدر و پسر هم دیگر رو در آغوش گرفتن و همه چیز به خوبی و خوشی برگزار شد پادشاه پیر به کشورش بازگشت و بعد از مدتی از دنیا رفت اما قبل از مرگش درس بزرگی رو از پسرش یاد گرفته We'll be right برد و کردم افسانه جوانترین شاهزاده بود از سرزمین ترکیه امیدواریم این افسانه ها و قصه های زیبای آمیانه اقوام و ملل مختلف هیچ وقت مثل کلاخ های قصه پر نکشن و همچنان در یادها و خاطره ها و از هان مردم باقی و زنده بمونن و ما حکمت و نکات ارزنده اونا رو به کار بگیریم این برامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله بود ویراستار الهام اشجر اجرا مهران دوستی صدابردار حادی عبالفزلی و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانی دیگر بدرود